بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوندی بی مهربان نهایت بارش آیا بر انسان دوره از زمان گذشته است که چیز قابل ذکر نبوده است بگمان ما انسان را از نطفه در هم آمیخته یافعیدیم تا او را بیازماییم و از این رو او را شنوا و بینا گردانیدیم ما به او راه را نشان دادیم اکنون به اراده خودش مربوط است که سپاسگزار می شود یا سپاس. در عین حال ما واکن برای کافران زنجیرها، غلها و آتش سوزانی را آماده ساخته برعکس نیکوکاران بیگمان از جامی می نوشند که مزاج آن یعنی طعم آن کافور است چشمهی که از آن بندگان خدا می نوشد و به گونه‌ای که بخواهند آن را جاری می سازد نظرهایشان را به جا می آورند و از روزی که مشقت آن فراگیر است می و تعام را با وجود محبت به آن به مسکین یکیم و اسیر می دهند ما با شما یقینا خاص به خاطر خدا تعام می دهیم از شما پاداشی می خواهیم و نه هم سپاسیم بگمان ما از پروردگار خود میترسیم. از روزی که نهایت زشت و بی اندازه دشوار است سپس خداوند ایشان را از شر آن روز نگه داشت و ایشان را به تازگی و شادمانی روبرو ساخت و ایشان را به سبب صبرشان به هشت و های حریر پاداش داد در آن بر تختها تکیه زدهاند نه آفتاب را در آن میبینند و نه همسردی شدید را و های آن به ایشان نزدیک است و میوه های چی در شده آن به گونه کامل آماده است به ایشان همه چیز به ظروف نقره‌ای و جامهای بلورین پیشکش می, پیش می شود بلور و در عین حال اندازه این خوراک و نوشاک را نیز خودشان به گونه دقیقی تعیین کرده هست. در اینجا چنان جامعه نوشانده می که مزاج آن یعنی تام و کیف آن زنجبیل است. چشمه در آنجا که سلسبیل یعنی گوارا و خشتعم نامیده می شود و بر ایشان از جوانانی که همیشه به همین حالت اند گشت و گذار می کنند اگر آنها را بیبینی می پنداری که مرواریدهای های غلطانند چون به آنجا بینگری نعمت ها و ملک بزرگ یعنی وسیع را می بینی بر ایشان های نازوک سبز ابری و دیبای استبر است و چوری های نقرهی پوشیده اند و پروازگارشان با ایشان از شراب خالص می نوشاند حقا که این پاداشیست برای شما و کوشش شما مقبول و مایه خوشندی ماست بگمان ما قرآن را بر تو به گونه تدریجی نازل کردیم پس به حکم پروازگارت شکی باباش و به با هیچ گناهکار و ناسپاسی از ایشان گوش فرامدیم و نام پروردگارت را صبح و شام یاد کن و شب هنگام او را سجده کن و در طول شب او را تصبح بگوی بیگمان اینها زندگانی گذران دنیا را دوست می دارند و روز شدید را پشت سر خود می گذارند یعنی آن را فراموش می دارند. ما ایشان را آفریدیم و آفریدیش را مستحکم گردانیدیم و چون بخواهیم ایشان را به گروه دیگر تبدیل می کنیم یعنی ایشان را از بین می بریم و گروه دیگری به جای ایشان می آوریم واقعا این است، پس هر کی می خواهد راهی را به سوی پروردگار خود بگیرد و شما چیزی نمی خواهید مگر اینکه خداوند بخواهد بیگمان خداوند و با حکمت است هر کسی را که بخواهد بر رحمت خود داخل می گرداند و برای گاران عذابی در ناکی را آماده کرده است